بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده یک تا عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و عرجمند که شبکه جهانی بلایت رو برای تماشا انتخاب کردید یک بار دیگه با چهار قسمت از برنامه های آین سلامتی در خدمت شما بزرگواران هستیم همینطور که قول داده بودیم چهار شنبه ها ساعت نونزده و سی دقیقه برنامه رو شروع کردیم و خیلی تحکیت های بسیار زیادی شما داشتیم در پرمک با تماسای تلفنی که بود مبنی بر اینکه کی برنامه تکرار داره کی برنامه شروع میشه اینکه چهارشنبه ساعت 19:30 در خدمت شما بزرگواران هستیم تکرار برنامه رو هم بزرگواران زیرنویس میکنن خدمت شما عزیزان من در ابتدا اجازه میخوام که یه مرور داشته باشیم به این چند جلسه ای که در خدمت شما عزیزان بودیم در جلسه در مورد قلب و روح صحبت کردیم امروز هم میخوایم بخشی از برنامه رو به قلب و روح اختصاص بدیم و بعد بریم سراغ تماس های تلفنی شما عزیزان احتمال اینکه زمان برنامه از جلسه بعد افشا بشه پیدا کنم هست من تا آخر برنامه اگر اعلام کنم به هم خدمت شما بزرگواران اطلاع میدم خب طبق همیشه و این اتفاق خوبی که داریم در خدمت مهمان عزیزی هستیم حضرت آیت الله جناب آقای زیایی کارشنسی عرشد حقوق دکترای فقه و اصول و از همه مهمتر متخصیص تبه اسلامی خود اقام عرض سلام دارم خیلی معدم سلام سلامت باشی در خدمت شما بینندگان میکنم. عزیز هست خیر خب من قبل از اینکه بحث رو با آج آقا شروع کنیم میخوام پولای ارتباطی رو اعلام کنم شماره تماس ها اول از همه شماره پیامک ما هست 1519 همینطوری که همیشه هاتون رو برای ما ارسال میکنید ما رو یاری کنید و بعد شماره تلفونای این برنامه صرف 511 225 41 53 225 41 69 225 41 13 لطف کنید که تماس ها رو از بیست دقیقه بعد از برنامه یعنی ما بیست دقیقه تا نیم ساعت اول رو صبر می‌کنیم از صحبت‌های گرانبهای آقا استفاده کنیم و بعد می‌ریم سراغ تماس های تلفنی شما بزرگوار. خب آقا هفته پیش همینطوری که ما طبق عادت زمان کم میاریم می‌خواستیم در مورد روایاتی داشتیم بحث قلب و اینا می‌گفتید. من خیلی دوستم ادامه اون روایت رو بشنویم امروز. چش. اسم الله الرحمن الرحیم. مباهثه اون در قلب عروق بود یک سری چیزا هست که هم بازدهی قلب رو بالا میبره از حیث کارکردش از حیث پمپاژ خون تمیز و از حیث بازدهیش و از حیث بهره وری بیشتر از قلب سالم که باعث طول و عمر توأم با سلامتی میشه گفتیم در روایات شیعه از رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم روایات داریم اگر کسی دوست داره از قساوت قلب خارج بشه و رافت و رقت قلب داشته باشه خشونت بیجا نداشته باشه پرخاشگر نباشه علاوه بر تربیت صحیح رشد یافته و تهذیب نفس به های سالم طبیعی هم نیاز داریم مثلا انجیر رسیده میوه انجیر من اراده ان یریقه قلبه فلیدمن اكل البلسه حتی تو های میوه درمانی و گیاه درمانی هم است اگر کسایی ضعیف لاغر و هزال اینها دارن میگن آقا هر روز انجیر توعم با بادام شیرین درختی و بادوم زمینی بخوره این سطح رو با هم بگه بدنشون فربه میشه <تصفيق> روایات دیگه ای هست که قصاوت قلب میاره مثل استماع لحویات موسیقی مبتزل رقص آور علاوه بر این حرام و گناه کبیره هست قصاوت قلب میاره کسایی که صیدای لهوی میکنن برای گذرانی خشگز... و تفریحات غیر سالم آسیب میزنن به محیط زیست سیدم و به اکوسیستم های حیاتی مخصوصاً اکوسیستم های جانوری شکار بیرویه دارن یا گوشت شکار زیاد میخورن خب شکار بیرویه قصاوت قلب میاره. همچنین مصرف گوشت شکار، اسید اوریک خون رو بالا میبره و دوچار رسوب اسید اوریک خون در مفاصل میشن و دوچار بیماری نقرس یا MSU میشن که بی... یه بیماری متابولیکیه <اوتاكات> یا مثلا اتیان و باب سلطان آدم رفت و آمد کنه در دربار سلاطین جور الحمدلله رب العالمین به تفضل خداوند و دعای خیر مولا صاحب زمان در آخر زمان زری پوشی مردم دنیا بالا رفته و مردم از مذاهب ساختگی سرخورده شدن و احساس پوچی میکنن زمین آماده مردم دنیا رو آوردن به ولایت معصومین اسلام ولایی رو پذیرفتن سبب میشه که انسان حس اعتماد به نفسش، تمرکز فکر خوبش و عقل فعال کاربردیش هم ایجاد هم استمرار ببخشه با اینکه قبلش بلقوه داشت اما سلاطین جور ظلمی عالم، قساوت قلب میاره. چرا؟ چون ولنگاری و های بیجارو رو ترویج میکنن و کاری به انسانیت انسان ندارم از قدرت از توان مالی از علم و دانش سو استفاده میکنن و انسانیت انسان رو سلب میکنن روحیات قلطاقگری دوبه همزنی پرخاشگری لجام گسیختگی و, و خشونت های و جامیم همه قصاوت قلبه ازا توروهایات شیعه و بعضا اهل تسنن میگه اتیان باب سلطان جور نرین تا قصاوت قلب نگه اگه با شخصی هم که خوب حال بدونیم که این شخص ظالمه بعد توی یک جمعی توی شهرکی توی دهکدهی بله. توی یک جایی که یه جمعیتی هست با اون جمعیت هم اون هم جزب همین آرد بله ازباب حباً... نهی از منکر عملا نشون بده که من قطع رابطه با ظالم میکنم زیرا که با ظلم مخالفم لذا در روایات شیعه از فرم و, اهل تسنن و اهل تسنن تو بحث نحجل بلاقه از شیعه و اهل تسنن و فرمایشات امیر المؤمنین علیه علیه السلام که به امام حسن مشتبه و امام حسین علیه السلام فرمودن کونا لفالم خصمن ولل مظلوم عونا همیشه یابر مظلوم باش و همیشه در ستیز و مبارزه باش با ظالمین عالم، دوست. یعنی بی تفاوت نباش، بی رگ نباش وطنتو دوست داشته باش هر کسی که در هر وطنی در این یعنی کره زمین قرار داره وطن فروش نباش اما اصول انسانی رعایت کن و حق بقیه، حق زیست سالم، حق محیط سالم، حق حیات برای دیگران قائل باش و رعایت کن تا از مهربانی و سمیمیت و رقت قلب برخوردار باشیم پس آدم اگر با ظالمین حشر و نش داشته باشه قصاوت قلب میاره بله. بعضی چیزا هست که قلب آدمی رو میکشه چه بحث شعور باشه چه فهم چه درک سعی چه فکر خوب چه عقل فعال کار بردیم اینا رو میکشه فطرت در انسان از بین رفتنی نیست مثل اینکه ولایت از بین رفتنی نیست اما اگر ممات قلب بیاد زنگار میگیره این فطرت زنگار میگیره حجاب حجاب حجاب میگیره فطرت همیشه توحیدیه و خدا انسان ها رو در فطرت توحیدی خلق کرده پس باید مواظب باشی که قلبت نمیره یکی از چیزهایی که قلب انسان رو می گناه رو گناه نه فقط معصیت رو معصیت که گناه مقتعی باشه بلکه گناه دنبالدار و گناه دنبالدار دیگر و گناه دنبالدار دیگر نزا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودم هم در بحار علامه مجلسی جلد هفتاد صفحه 349 حدیث 45 جلد هفتاد و یک صفحه صد و و حدیث بیست و دو و همچنین خصال شیخ صدوق جلد یک صفحه دویست و بیست و بیست و, و سائل شیخ حر عاملی جلد بیست صفحه صد و, و هفت حدیث بیست پنیزار و چار و مستدرک محدث نوری جلد هشت صفحه سی, و سی و حدیث دو شماره مسلسل نو هزار و پونسد و نوود و شیش فرمودن یومتن القلب چهار چیز قلب آدمی رو میکشه از ذنب و علا ذنب گناه دنبالدار توبه نسو هم نمیکنه دوباره گناه دنبالدار اولی یا گناه دنبالدار دیگری رو تکرار میکنه خب این مقدمه میشه برای اسیان دائمی و اون مقدمه میشه برای تغیان کسی که تغیان کنه عذاب داره و کفرت و مناقشت نساء. آدم با زنان لاعبالی زنان هرزه دخترای فراری از خانوا خانواده نباید مشست و برخواست کنه چون مبتلا میشه به جرمهای اجتماعی و آسیبهای فردی و اجتماعی آدم باید با افراد خوب مشست و برخواست کنه اذا یکی از چیزایی که قلب آدمی میکشه و قلبه احساسات بیجا در عقل میشه به نوع قلبیه غضب بیجا یا به نوع قلبه شهرت بیجا آدم با افراد بد نشست و برخاست کنه یکی از کارهایی که دشمنان انسانیت انجام میدن قلبه نفس عمارس به نوع شهوت بیجا یا غضب بیجا لذا در روایات شیعه داریم که ابلیس لعین اولادایی داره هم هیم لاقیس لبینی این ستاش پسراشن لبینی دختر ابلیس بعد تو روایات میگه یکی از کنیه های ابلیس لعین ابو لبینی چون بسیاری از افراد قبل و از افراد امت مرحومه و مردم دنیا رو همین لبینی فریب میده از باب قلبه شهوت بیجا وقتی شهوت تشدید بشه و حالت انفجاری برسه یا قذب بیجا تشدید بشه و حالت اعمال قذب بیجا برسه عقل میپره دیگه انسان آقلانه حرف نمیزنه آقلانه عمل نمی کنه و مطالب دیگه ای که هست حالا از تو بحث تحذیب نفس و اخلاق عملی و رفتارهای مثبت علوم رفتارین و همچنین بحث روانشناسی بالینی بیان بیرون مامنام بحثای جسمی و خوراکی اگر کسی قلب ضعیف داشته باشه قوت برای قلب ضعیف و درمانش مصرف میوه به اگر یوگوست و نفخ شکم داره آب به بخوره که جلسه قبل تذکر داد بله. یکی دیگه از چیزهایی که قلب آدمی رو جلا میده گفتیم اصل طبیعی به دست آمده از شهد گل‌های غیر سمی مم. اونم که توضیح داریم که قلب آدمی رو جلا میده و تو بحث عسل درمانی فواید بسیاری بیان شد یکی دیگه از چیزهایی که تقویت قلب و تسکیه قلب میکنه بحث سیب رسیده است که گفتیم بهترینش سیب قرمز معطر لبنانیه بعد سیب گلاب خراسان و سپس سیب زرد که باز تو مطالبی فرموده از جمله فرح قلب شادابی طبیع قلب یکی از مستحبات در خوردن میوه در قسمت سیب تو بحث سیب چیه؟ میگه این سیبه معتر رو اول بو کن بعد بخور قلب رو شاد میکن مطلب بعدی جایگاه عقل آدمی مغزه و قساوت قلب و رقت قلبم مربوط به قلب آدمیه حالا چون که روز زیارتی امام رضا رعوف علیه السلام نزدیکه که 23 زیغاده است جمعه میشه امام رضا رعوف علیه السلام فرمودن افوال العقل معرفت النفس عقل برتر شناخت نفس هر کسی خویش بشناس بدنت بشناس قضا و آشامیدنی سالمه بشناس مصرف کن به مقدار لازم روانت بشناس تعادل روانی بشناس بیماری های روانی بشناس از بیماری های روانی چکا کن اشتناب کن دوری کن اگرم بعضیاش بود درمان روحت یا روانفوش یا جسم سیال بشناس مقویه شو معداتشو به دست بیارد اونایی که مخرب روحه ترک تا روح و ایمان همیشه دارد فعال بمونه خواستم یه یادگاری از امام رضا رعوف علیه السلام مطلب مطلب دیگه توان یک مؤمن و مؤمنه در قلبشه رضا مؤمنین و مؤمنات ممکنه از نظر بدنی ظاهرشون ضعیف باشه اما قدرت کاری و فعالیت فردی و اجتماعیشون زیاده بیماری ندارن به اصطلاح دکترها بیش فعالی ندارن که یک بیماری ژنتیکی یا آرزیه نه به خاطر قوت ایمان المؤمنو کل الراسخ راسخ به خاطر باورهای سعی توامه با دانشهای سعی که از مکتب اهل بیت اسمت و طهارت یاد گرفتن تکلیف مدارن وزیف شناسن. و سپس عمل به تکلیف میکنند بذا جنب جوش لازم داره فعالیت لازم فردی و اجتماعی داره و همیشه خیر رسان به دیگرانه چون نیتش خیره و نیت المؤمن خیر من عمله از این بیشتر توان انجام کارهای خیر نداره نه اینکه بناش نباشه لذا این روایت میفرماید امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام می‌گه 4000 شاگرد داشت این حداقل شاگرد باشه امام صادق علیه السلام که چهار تا رئیس های امام های اهل تسنن گرامی ما از حنبلی ها و شافعی ها و حنفی ها و مالکی ها این چهار تا امام های این بزرگوار همه شاگرد امام صادق هم پس وقتی ما فرمایش امام صادق می میخونیم برای همه مسلمینه چون استاد اساتیده چون امام صادق امام باغر طبیب الاطباءه پزشک پزشکانه کروایاتم داریم این قوت المؤمنی فی قلبیه. آلا ترون که کم تجدونه ضعیف البدن نحیف الجس و او یقوم اللین و یصوم النهار. حذف بطور مستقیم صاد. مطلبی دیگه کسایی که نارسایی در قلبشون دارن از حیث ساقیت و یا بعضی از اقسام بوی بد دهان دارن. یازده فایده داره. حالا یکیش ما گفتیم مربوط به قلب بود حالا اینجا تو روایات شیعه می فرماید. سعتر با ملح سعتر تو روایات شیعه با سینم اومده با سادم اومده منطقه لبنان و نوار قزه و فلسطین اشقالی اونجا زعترم میگن بازه زنبوریم میگن به اسطلاحی ما میگیم آویشن تو آویشن ها بهترینش آویشن شیرازی حالا آویشن شیرازی ها. مخلوط میکنی با ملح با نمک تعام یازده فائده داره اگر کسی اول و آخر غذا بخوره حالا مباعث ما یکیشم یتردان ریاح من الفؤاد مطلب بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن کسانی که قلبشون خفص و ظلمت گرفته اینجا تو خورشت انبیاء یه سری چیزها هست مثل از زیتو قوت الانبیاء الخلو این خورشت انبیاء سرکه طبیعی مخصوصا سرکه طبیعی انگور اسکری حالا یکی از چیزهایی که نورانیت قلب میده و جلا میده به همین قلب گوشتی که از زوله سنوبری شکل پشت چپ دندایی های سینته مصرف سرکه طبیعی انگور اسکریه الخلو یا القلب یحیی قلب هم نورانیت بیبخشه هم قلبو احیام میکنه آخرین پیشرفتای علمی تو بحثه پیشگیری از سکته های قلبی عروقی مثل دکتر سیف الدین نبوی تو کتابش میگه آقا کسایی که سکته ناقص کردن مخصوصا قلبی عروقی اینجا باید از آبلیمو و ترش حفظی کنن از اوسانسای شیمیایی از فستفود ها قضاهای صنعتی خدافزی کنن به جاش تو جیره قضاییشون سرکه طبی بزن خواستم بگم امام صادق علیه السلام کی فرموده متخصصین قلب و در قرن بیستان بیستی اکم دارن می یا مثلا تو بحث کسایی که گرفتگی اروغ کرانر قلب درن یعنی سرگ شریان اصلی که خون به عزل قلب رسوب گرفته. خب تو پزشکی جدید یه بالونی میزنم، یه آنژیوگرافی میکنن، گاهی میبینی این رگ باز رو هم میافته. خلاصه آخرش میفرماین که بیا جراحی باز بایپاس کن. حالا تو پزشکی اسلامی بدون اینکه دست بزنی به ترکیب بدن، هم میتونی پیشگیری کنی از انسداد عروق کرونر قلب، هم میتونی این انسدادشو باز کنی. دعاشو به جون امام صادق علیه سلام کنین اینجا تو جیره یه کرفس بذاره کرفس کرفس خام حالا اگر فرض کن ستارگای اروغ کرونر قلبش گرفته به مدت دو هفته هر شب از بعد از شام تا وقت خواب یک لیوان آب کرفس خام میخوره بعد از دو هفته میشه یک استکان نصف لیوان بعد از پنج هفته اونجا تبدیل میشه به یک ساقه کرفس یا نصف استکان ها. پس یک لیوان نصف لیوان نصف استکان به سال افراد سال من بخواد پیشگیری میشه حالا اینجا قال صادق علیه السلام ال کرفس و یورس الحفظ حافظه هم قوی میشه خب من عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند بابت این غیبی که در ارسال تصاویر از مشهد به رویداد و می‌دونید که ما از اساتید مشهد در تماس شما بزرگواران هستیم دو روز دو شب دیگه شب زیارتی حضرت رضا است ان شاءالله که بتونیم زیارت شما بزرگواران و تک تک شما کسانی که دوست دارید این شب رو در هر حضرت رضا باشید. خوجا من بحث کوتاه می‌کنم بریم ادامش بیاد ببینم صلوات بس در فرمایشات معصومین بودیم چیزایی که فرح بخش چیزایی که تقویت قلب می‌کنه چیزایی که ایجاد سلامتی قلب و استمرار سلامتی قلب می‌بخشه از جمله میوه ها میوه گلابی رسیده است این میوه گلابی دردهای اندرون رو خوب میکنه گفتیم از جمله تو دستگاه گوارش بحث مده بحث روده و بحث رکتوم و راست روده بحث جلای قلبش حالا مورد مباحثه است که توی بحث قلب و اروغه دردها یک بار روی سینه این مربوط میشه به ضعف اصاب جوش خوردن یه بار دیگه درد منتشره هست رو جناق سینه و پخش میشه نمیشه آنژین صدری ناراحتی قلبی هنوز نیست یه بار از پشت دنده های سینه چپ به طرف جلو گرد شدیده دونه یکی بخواد نفسش بند بیار اونجا مربوط میشه به ناراحتی قلبی حالا الکمثرا یجلل قلب گلابی رسیده خوردن قلب رو جلا میده از جمله قال لرجل شکا ایله و جعن یجده فی قلبه مادی ک شکایت کرد و گفت ک من قلبم درد کنه و قطعا علیه. قال الصادق عليه السلام كل القمره. تو تجیره قضاوت باشه و سه داده قلبی هم مفید و سه مطلب دیگه کسایی که قصوات قلب دارن و آشکب بجا ندارن. مثل جریه به نوع انابه توبه نصح کرده میخواد الیه اونیب به سمت سوی خدا بر سیر و سلوک معنوی داشته باشه اینجا علاوه بر توبه نصح انابه میخواد خب انابه هم عشقه به جا میخواد که برخواسته از خوفه که ترس آگاهانه است و خشیت ترس ای که در ظاهر جلوه میشه انما يخشى الله من عباده العلماء خب حالا اینجا پایه همه اینا رقت قلبه با قساوت قلب که اشک شوق نمیاد همچین اشک خوف نمیاد اشک خشیت نمیاد اشک عنابت نمیاد حالا یکی از خوراکیایی که رقت قلب می آورد رقت قلب یک پهن مثبته بیماری نیست یک رفتار مثبته فرق میکنه با بیماری دلنازکی که هم تو روانشناسی بالینی بحث میشه و هم مؤمنا تو تخصصی قلب و عروق کسی که کم خونی شدید باشه قندشم هم زیر نرد باشه افت فشار خون زیر نه داشته باشه بیماری دلنازکی میگه اون بیماریه عمر دقت قلبش یه پهن مثبت. حالا امام رضا فرمودید می‌دونید دوستانم اصلا میگن ساعتون میگن یه تلفن داریم از مسکو خیلی تأکید دارن احنا. که داخل برنامه اه. صحبتشون وارد بشه من قبل از اینکه حالا این تلفن تامقی که وصل می‌کنن دوستانمون بله وصل کردن سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید سلام علیکم جواب علیکم السلام شما واشین ما یک مشکل داشتیم می‌خواستیم که از جواب جای بپرسم روزی با, با, با, با چربی خون بله چش. مشکل خاصی دارید شما چابی خونتون میگن آقا چه نوئه از جی خودیم نیستم بس من باشم برادر خونش بالاست پس نو چابی خونش نمیدونید درسته بله بله چابی خونش بلاده خیلی بوژاگوی دستتماسی تو متشکریم خدا نگهدارت خدا نگهدار ما بدیم جواب چترو بله حتما بله, بله آقای جمشیدی رو حالا من دوستامو اگه اجازه بدن ما ها رو پنج دقیقه دیگه بگیریم خیلی معلوم میشه آقای جمشیدی بست کنن تلفن بعدی رو بحث... بله آخرین این اولین تلفن رو بس کن بعد دیگه به نام بحث تلفنشون تا موقعی که بست می‌کنن تلفن رو بست کن خیلی الو آی سلام سلام. سلامت باشی متشکرم حق در سلامت من یه سوال داشتم حدود 20 صبح در اثر هم بود قلب رفت بالا در اثر خوردن, خوردن چی؟ 50. در اثر خوردن چی؟ انگور زیاد انگور آره بله. تا پونسد بله ولی دیروز از دادم رسید تا رسید در اثر فرید که کردم مراقبه که اینا رسید تا صد و نو 129. 129. بله. 129. بله. 129. بله. ولی حدود یک هفته پیش بعد از اینکه از خواب شدم تار شد بله الان رفتم دکتر گفته از قلب نفیش، مشکلی نداره بله سنتون چقدر های جمشیدی؟ جا. سنتون چقدره؟ سنم و نه سن شست و نه سن و و هفت, و هفت خیلی خب مشکل نداره ممنون من از تراسون های جمشیدی بلی گیرنده بگیریت مچنکرم ممنون خب این آره این دوتا بزرگوار ها. رو قبل از این که جواب رو بدید اون بحث رو تمامش کنید نقطه رو بذاریم به شما از کنم رققت قلب عدس عدس تو جیره قضایی باشه رقت قلب میاره حالا هفته یک هم شد کافی به شرطی که تو روایات میاد. به شرطی که یوبوسط و بواسیر نداشته باشه عدس رقت قلب میاره بزرگ. یکی دیگه از چیزهایی که قلب انسان رو مسرور میکنه مخصوصا قلب حزین قلب کسی که قمگینه یه گرفتاری براش میاد، یه سختی بلا براش میاد. تو روایات شیعه میگه کدو حالا با سه تعبیر یقتین دبا قرعه از شیش قسم کدو سه مدلش تو روایات شیعه آمده حالا مباعثه خودم اذا طبقتم الطعام فاکثر القرعه فا یاسر رو القلب قلب لحزیین قلب غمگین رو مسرور رو شاد میکنه. این روایتم از امازای روف السلام در صحیف الرضا رضا السلام و در تبل المعصومین دکتر لبی بیون صفحه ۳۸. همچنین مهممن ها یکی دیگه از چیزها تو میوه ها. بحث دانه های انار شیرین این رو هم با پرده نازک رو دونه ها بخوره. که برای معدش خوبه هم مباحثه خودمون قلبش رو نورانی میکنه. کل رومانه فلیست فیه حبته تقع فی المعده الا انارت القلب واخرست الشيطان 40 یوما انار شیرین خوردن هم قلب رو منور میکنه. هم هر دانه این انار که تو معده میره علاوه بر نورانیت قلب شیطان رو کر و گنگ و لال میکنه دلوقتي. اخرس میکنه تا چهر روز به اسطلاح خودمون حرف بزنیم که بینندگان بهتر تصور کنن تا چهر روز بیمه عمرته شون میوه انار هم خون رقیق میکنه هم خون تصفیه میکنه هم کسانی که روماتیسم‌های مفصلی دارند داروشون دو چیزه یکی آلو بخارا و یکی هم انار شیرین روزی استکان آبشه به بخورن فستایی که نبود که پلو پلوخوری رو به انار این سال بیننده آره عزیز از, از مسکو آره من قبل از که بریم سراغ تماس های تلفنی یکی از نکاتی که خیلی تو پایمکاج اشاره کردن مالی. اون برنامه غذایی بود که شما برای رژیم چاقی و لاغر شدن بود بلی. خیلی باز پرمک داشتیم که از دانی لاغرم میخوان چاق بشن خیلی هلی. خلاصه اگه به این, رو... انا... ها... این هم روایات داریم آره. هم روایات داریم هم, هم کتب تخصصی مثلا چه عواملی لاغری آورد به نوع هزال نحیف شدن لاغری مفرد یک سحری مکررن نخورد صبحانه مکررن نخوره بعد بره سر کار. دوم کسایی که پرکاری تیرویید دارن و نرن پیش متخصص قدرت و درمان کنن. سوم کسانی که استرس، نگرانی مستمر دارن یا آشفتگی روانی دارن یا درگیریای ذهنی دارن یا دلواپسی، دلشوره دارن یا اضطراب و دلهوره دارن. اینها هم دوچار لاغری و سرسوزه میده هارت برن میشن مطلب دیگه کسایی که سوء تغذیه دارن از سوه رو درمان نمیکنن. کنن شیمیایی میخوره فسفود ها میخوره اما قضا و ریزم و قضیه لازم نمیخوره که هر زیاد خوراک نابجا بدن کم میاره از حیث ویتامین از حیث م... املا عزیز اناسو اجازه برای لاغری رو فقط بگید که ما بریم سراغ سوالات تماس تلفنی یکی از بی اشتهایی به خاطر فقر روی فقر بی اشتهایی التهابی بی اشتهایی عصبی اینا لاغری میارن کسایی که هر روز حمام برن لاغری میاره لاغاری. کسایی که ضعف اعصاب متوسط و شدید دارن لاغری میارن کسایی که تحرک زیاد بدون سخت لازم دارن لاغری میارن تو روایات حالا اگر کسی لاغره میخواد چطوری اینجا هم روایات داریم اشياء بله تصنع مثلا الطب النبوي لابن قیم الجوزيه صفحه 81 طب اللبيب معصومين دکتر لبيب بيزون صفحه 90 من خیلی اصرار دارن عائشه من از عائشه می از تو, گوش تو گوشی تو من, من میگن که از آمریکای نفر تماس گرفته دوست نداریم اینطوری حالا میون برنامه اضافه بشه ولی خب این بزاق. یکی, یکی. علو. علو. علو. سلام علیکم سلام علیکم من ربابم از افیکا مزاحمتون میشم بله بفهمید در شماتون هستم خانم سلام از میکنم به آقای دکتر زیایی بله. از کنم به قضی ما ناراحت میشیم که وقتی برنامه شما قطع میشه با بیشتر از تمام برنامه های دیگه به برنامه شما واقعا با ما از هم نظر روحی و جسم احتیاج داریم اینشاده که بودچه شما درست بشه که اینشاال هیچ وقت برنامه رو قطع نشه.شاخبرا چه آقای دکتر زیایی؟ ما بعد از این که برنامه شما تموم میشه واقعا احساس میکنم فقط شنیدن و دیدن روی شما و سخنان شما اصلا حال بیننده شما رو در جا خوب میکنه این که یکی که برسه به این که انشاءالله دستران رو را رایت کنیم از تشکر میکنم از شما و در محشت بله. مقدس هستید آیا پذیرای بیماران هستید که وقت از شما بگیرن چجوری چه از خارج از کشور چه از داخل از کشور از شما تشکر می‌کنم اگر فرصتی شد درباره کده هم اطلاعاتی به ما بدید مبعید باشید یا علی بعد خداحافظ قربون شما من الان حالا این اطلاعات رو اگر جواب بود از طریق تماس تلفنی و پیامک دوستانمون باهاتون در ارتباط با باهاتون صحبت می‌کنن تماس تلفنی رو چند دقیقه‌ای داخل شبکه نمیاریم تماس خیلی زیاد هر ساعت داره زنگ می‌خوره من هم میدونم بذاریم حاج آقا جواب سؤالها رو بدن که بریم سؤالها سال بعد به خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جانی ولایر به همه درود میفرستیم اینها عاشقان چاردن معصوم و اگر به ما سادات احترام میگذارم به خاطر چاردن معصوم مطلب دیگه حاج آقا من متب ندارم داخل و خارج کشور با تلفن جواب میدم ساعت تماس دو تا دو نیمه بعد از ظهر و شبها ده تا ده نیمه شب اینشالله اگر خونه باشن در رابطه با سؤال کبد اینا اینشالله رسیدیم میگیم در نخواه بحث... بله حالا اگر کسی مثلا لاغره میخواد چاقشه اگر مشکل قده تیروئید داره پرکاره باید پیش متخصص قداد بره اینشالله معتدل بشه کم کم رو فارم میاد چون پرکاری تیروید غذا رو میسدونه هضم نمیکنه حالا اگر شرایط عادیه و لاغره اینجا ما روایت از شیر اهل تسنن داریم قالت عائشه تو حضرت خانم پیغمبر و خانم نهمش که دختر عبیبک بود ایشون میگوید سمنونی به کل فلم اسمن دکترای مختلف اطباء مختلف میخواستن من عایشه رو چاق کنم ولی من هرگز چاق نشدم همجور لاغر و نحیف بودم فسمنونی بالقثاء و رطب فسمنتو من رو سفارش کردن گفتن خیار ای با رطاب، با خرمای تازه این دوتا رو با هم به جاو بخور میگه من این کارو کردم چاقی و فربهی لازم برام حاصل شد پس حالا یک داروش از روایت گفتیم از شیع به هل حالا حواشی که من بر این کتاب بزرگوار دکتر لبی بیضون زدم صفحه نوت اینجا با خودگاه قرمز هاشیه زیم. یکیش همین روایت بود که خدمت شما خوندیم. مطلب دوم که در زمین صحبتان تذکر دادم خوردن بادام شیرین درختی لو هوون با بادام زمینی که عربای محترم میفرمایند فستق روایتشی هم است. و با انجیر این ستا رو با هم بخورن هفت هفت هفت دونه دونه هر از هر کدوم یه دونه ستاشو با هم بخوره این هم چاقی میاره سوم. اگر چهل روز هر روز صبح انجیر با انیسون یعنی بادیان سبز شخص بخوره این هم چاقی میاره همچنین خوردن رازیانه آبی به نوع جوشانده اگر باشه 28 گرم در نیم لیتر آب حتی گفته شده گیاه رازیانه آبی بهترین وسیله برای فربه شدن اشخاص لاغره و این رو آقای احمد حاجی شریفی معروف به عطار اسفانی در کتاب خواص گیاهان دارویی آخر صفحه 25 و اول صفحه 26 آورده مطلب, مطلب پنجام مربای گردو که با اصل درست کنی برای فربه شدن خوبه اینم اصرار گیان داروی صفحه 938 تو بحث خواست درمانی مغز گردو شماره 4 اونجا بیان کرد مطلب ششم خوردن کنجد که عربان میفرمایند سمسم تو روایات شیه هم سمسم اومده جل هم اومده چون دو قسم سمسم داریم دو قسم کنجد داریم حالا خوردن کنجد مخلوط با بادام شیرین درختی من و شکل زرد خوزستان که میگیم تبرزد اگر اینا رو با هم بخورن حتی تو کتاب گیاهان دارویی، تعلیف کازم کیانی صفحه 369 میگه اینم فربهی و چاخی عادی میاره این بعداً رو فرم میاد امروز قرار برنامه ما یه ساعت نیم باشه همون یه ساعت تماس تلفنی خیلی زیاده به من رو جواب فقط در حد دقیقه جواب که بگین چند تلفن بگیریم تلفن خیلی اینا رو جواب بعد بگیریم با هم ما منتظر تلفن رو کن و قوم تماس گرفتن سلام خانم ترابی شبکه جهانی ولایت بفهمت سلام علیکم. سلام علیکم سلامت باشی مخواستم بپرسم برای موهای زاید صورت هجابات چه پیشنات میکنم موهای زاید صورت بله چشم حتما دوستان اتاق فرمان تلفن رو بعدی رو وحس میکنند برامون آقای رضایی از اسواحان تماس گرفتن آقای رضایی سلام شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم علیکم سلام شما همچنین خواهش میکنم بفهمید سؤالتون بپرس خدای افضل نمکنه محره حاضر آقا سلام عرض میکنم و برای شما عرضی توفیق برم انشاءالله محرم برای حضرت جایت الله درزوینی حفظ الله و حضرانی که شب مسائل حاضر آقا من هفته گذشته عرض کردم خدمت از که این خانواده ما ایشون مریضه هستن سرش میسوزه سوزش سر دارن و به حدی برد وقتا احساس سردرد میکنن سوزش سر که چشمشون حالت پرکاش سنگیری میکنه و تو راه رفتن حالت مدون رفتی راه میرن و مسی که توی خواهیق باشن در طرح دارم دارن با مود را میرن درسته و حالات حالات استراپ دارن همیشه افسردن بله. خیلی من رو معالجه کردم 20 سالی هست که رو معالجه میکنم البته هورمون تراید هم درش که قرص تراید هم مصرف میکنه بله. بعضی مواقع این سردردش و همین ناراحتی یا اینهاش زیادتر میشه بعضی وقتا کمتر میشه درسته. اما عموما با این ناراحتی درو کار داره درسته. دیگری که خودتون فرمودید که تراید فعال بشه انسان لاغر میشه اون سالی که من به که خودم خودم خیلی اخیراً دو سال اخیر خیلی لاغر شدم و میخوام برم بگم اگه از چه آثاری درم هست که بفرمایید سالی دارم لاغری و چروک و پشت سرم دو تا غده آقای رضایی آقای و هر وقت نره این می ماساژ میدم ماساژ میدم. آقای رزایمان اسخایم کنم عزتمن. داداش را هتل میشه. وقتی از زنان رو نکنیم. خواهش میکنم. داداش زیر زوایا هستم. لطفا. خدا خیر خواهد شد. انتظار دوستان که تماس میگیرن یک سال و دو, دو سال من هیچ دو سال مسالم کنم دو سال اول آقای رزایی پاسخ بدیم چون زمان نداریم تماس بعدی رو برسیم کن. سرکار آقای اشکی از تهران شبکه جهانی ولایت بفهمد. آقای اشکی. خدا. خدا. خب ارتباطیشون قطع شد آره من تغازه دارم که فکر میکنم زمانم نداریم هفت دقیقه بیشتر آره سال اول اون چربی خون که زیاد داشتن اگر از کلسترول بد یا LDLت بالا هست روزی یک ما شوید تازه نبود یه استکان عرق شوید نبود یه قاشق مرب بخوری پودر شوید نبود قرص گیاهی آنتوم کلسترول بدت میاد پاید اگر تریگلیسرید خونت بالا بود اینجا وسط نهار یا به همراه نهار یک دونه کدو مسمو کدو خورشتیا با پوستش بخور به صورت خام یا بخارپز سال بعدی دیگه ایشون چی بود؟ یک عزیزی گفتن که 20 روز پیش انگور زیاد مصرف کردن چون که در, در ها بله اون عزیزی, که فهم... بله. اون عزیزی که 67 ساله بودن انگور زیاد خورده بودن قند خونشون رفته بالا و الان حدود 127-129 قندشون هست باید بدونن که میوه ها اونی که قندش کمه مثل توت فرنگی، مثل تمش اونی که قندش متوسطه مثل میوه های مرکبات بیموشیرین، پرتغال، نارنج اونی که قندش زیاده تو میوه ها یکی موز یکی خورماست و سپس انگور پس اینا رو نباید کسی که دیابتی هست زیاد بخوره اگر زیر دیویستی از تا خورما نباید تو بیش ساعت بیشتر بخور و یه خوشه انگور کوچیک بیشتر نباید بخوره حالا اینجا که پرخوری کردی حواست پرد شده حالا با چیکار کنیم قندت بیاد پایین؟ اگر هر روز صبح اول آفتاب نیم ساعت تا یک ساعت پیاده روی آرام در سطح مستوی داشته باشین در مریض مختلف بین ده واحد تا بی واحد قندشون میاد پایین. تو خورکییا یک بادام تلخ صبح میخورین یک بادام تلخ شب میخورید. تو مریض مختلف بین ده واحد تا 15 واحد قندشون میاد میادین. وسط روز یا اسرانه نصف استکان عرق کلپوره بازم تو مریضای مختلف بینه 10 تا 15 و هفت قندشون بیاد پایین حال اگر همیشه ای سال بدن داغه کف دست هم داغه یعنی گرمزاجی متابولیسم بازارت بالا هست اناب آلوبخارا تمهندی بی نمک نیم کیلو نیم کیلو نیم کیلو هر کدام در دو کیلو آب مخلوط میکنی خیز که خورد حسهاش جدا میکنی تو همزم مخلوط کن میریزی تو ظرف پیرکس یا چینی دردار روی تاخچه جامی و یخچال نگه هم میداری هر روز صابیه همش بزن یه استکان صبح بخور یه استکان شب تو مریضای مختلفی که گرم گرمزاجن و متابولیسم بازالشون بالاست در زم دیابتی هم هستن چه به نوع بی مزه چه به نوع قنده شیرین دیابت نوع دو اینا هم امتحان که شده بین 10 تا 15 واحد قندشون میاد پا اگر مزاجی همیشه سال بدن دیخه و کف دست استفاض یخه یعنی افت متابولیسم بازالم داری اینجا تخمه هندوانه هنزل اگر قند خونت زیر 200 سه عدد تو چهار ساعت تخمه هندوانه هنزل همینجوری نباید بخوری اسمیاره تنگی نفس همون وقتی که میخوای بخوری چند تا تقه بزن خرد بشه تو کپسولای خالی که از ژله روده گوسفنده نه از ژله روده خوک که حرامه خب این کپسول های خالی که از ژله روده گسفنده یا نونسنگتی که میخری خمیر نور نونسنگت قاطی اون کن بعد بخور که تو معده بازشه هم پانکراس و لوزون معده تو فعال میکنه در ترشوی انسولین هم در سر ها قندش میاره پالین اگر قند خونت بالای دیویس بود این میشه پنج عدد تخمی هندوانه هنزل که خود میکنی تو کپسول خالی این فرمایش این آقا آجا آی رضایی از اسفهان گفتن که همسرشون یا دخترشون دقیقا نمیدونم سرشون میسوزه چشمشون سنگینی میکنه راه رفتنشون موج داره و بعد آلا این پاسخ بدین سال بعدشون موج داره. این حضرت خانم شما یا دختر خانم شما هم خونی داره و هم افت فشار خون داره رضا چیزای ترش و تندتیز و براش خوب نیست حالش بدتر میشه اینکه میگه موج داره پارکینسون نداره عدم تعادل در حرکت نداره بلکه دواری سر داره یعنی زیر کاسه سرش احساس میکنه که خالی شده بدنش همیشه داغه با اینکه تب نداره پس کم و افت فشار داره میتونی هر دوشو همزمان خوب کنی عسل رقیق شده صبحگاهی یک قاشق بخوری عسل گرم تو با شیر گاو کم چرب یا با آب جوش یا با آب میخوری صبح بعد از نهار تا مغرب هفت عدد خورما میخوری بعد از شام تا وقت خواب یکی دو تا سیب درختی آب بگیر یک قاشق توش عسل هم بزن بخوره حالش خوب خوب میشه ان شاء الله آقای عشقی از تهران تلفنشون قطع شده بود یه لحظه وصل کردن الان فهمیدم از تهران هستن آی عشقی شبکه جهانی ولایت سرتون داریم بفهمید. آی عشقی. الو. بله بله. سلام آی عشقی. سلام علیکم. خوب من واسه خیر که تماستون قطع شد. بفهمید در خدمتتون هستم. من در خدمتتونم. شما بفهمید. خوب به محضرتون که من تو تا سوال دارم سریع میپرسم که وقت بگیرید. اگه یکی به از خون و آدم مبتلا شده باشه برای مداواش چه دستور بعدی و ببین که برای تقویت سیستم ایمنی چه برنامه ای ان شاء الله. بزرگواریت شما آقای عشقی التماس دعا. همسر من زیاد پاش میپی که میخوره زمین میشکنه. جوری که دو بار تا حالا پاهاش افتاده و شکسته. این دلیل خاصی داره یا اینکه باید حواسش رو جمع کنه درست راه انشالله <تصفيق> ان شاء از التماس دعا داریم متشکرم خب الحمدلله همسر آه. ایشون عاقله، هم سالمه. الهی نه اینها گای اضافه وزن گای کفش پاشن بلند گای حواس پرتی اگر مشکل مفصل باشه به اصطلاح مکانیکی میگیم مفصل یا میزنه یعنی محور مفصل میچرخه با کوچکترین چاله کوچک یک شیب اینا اینجا حتما باید پیش یک متخصص مفصل یا متخصص ارتوپدی یا فوق تخصص سرزانو حتما باید مراجعه کن حالا این چرا مفصل میگرده پاش تون تون پیچ میخوره حالا با بانداج ببندن آیا مثلا ازاله چهار سر زانو مثلا شل شده آیا مینیکس پا پاره شده آیا تاندون های پشت پاش کشیده شده آیا کفشی که میپوشه ناجوره باید رعایت تب کار کنه پس این بزرگوار حتما باید بره نشری مایه مفصلی نداشته باشه خوردگی مفصل نباشه آرتروز نباشه حتما باید حضرت خانومش بشه یه متخصص مفصل یا فوق تخصصه سرزانو یا متخصص ارتوپدی مراجعه کنه اما خود یه بزرگوار یه ی من قبلش از اینا بکنم ما این تماس‌های عشقی که بحث کردیم قبلش تو زمانی که ما ها رو می‌گرفتیم تماس گرفت تماسشون قطع اصراری هم که و به هر حال تلفن جواب دادیم. علتش این بود این هفته ما سی دقیقه قول گرفته بودیم از قوم که با ما وقت بدن و یک ساعت و نیم و 90 دقیقه در خدمت شما بزرگان باشیم. این قول رو من همینجا از سمت خودم و منظر راجا میدم به شما بینندگان که هفته دیگه ما یک ساعت و نیم و 90 سی... دقیقه در از شما عزیزانیم. 20 دقیقه 25 دقیقه صحبت می‌کنیم و یک ساعت و خورده‌ای تلفن‌های شما می‌گیریم این هفته عذر ما رو ببخشید و عذرخایی می‌کنیم نمیتونیم دیگه تلفنی پاسخ بدیم من همینطوری که به تلفن نگاه می‌کنم فقط قطع میشه این چراغ روشن میشه هفته بعد جواب رو می‌دیم بهتون پرمکاتون رو ارسال کنین همینطوری که هر هفته پرمکار می‌خونیم میتونیم پاسخ گوش ما قبلش بریم سراغ سوال آقای اشقی آقای رضایی در مورد تیروئید پرسیدن تیروئیدت اگر پرکاره یقین داری پرکاره تست تیروئید میشه متخصص غدد یا فوق تخصص غدد دادید حالا یقین کردید تیروئیدش پرکاره حالا تو جیره غذایی ذرت بذاره یک نان ذرت سوپ ذرت با شام بخوره همین ها کافی بله گفتن که آایش که جلوگیری از غلظت خون غلظت خون کسایی که عرق ریزش زیاد دارن پرتحرکن مایعات سالم بل آب و آبجوش جوش کم میخورن یا نمیخورن قلزت خون در این افراد بالا میره درمان قلزت خون یا پیشگیری از او هر روز در 24 ساعت 4 لیوان آب آشامیدنی سالم 4 لیوان آب جوش بلر. یعنی هر 6 ساعت یه لیوان آب آشامیدنی سالم یه لیوانم آب جوش ولرم بخوره اما مصن مصن یعنی بمیک بمیکه بخوره یه نهی بذاره امام صادق علیه السلام فرمود اگر قرد قرد بخوری یو رسول کباد دردهای کبدی میکره مطلب دیگه این که تو خوراکیا چیزایی که خون رو رقیق میکنه مثل تمشک مثل زرشک خام مثل آلو بخارا مثل ریواز مثل اناب اینها هم خون رقیق میکنه اگر تمشک یا زرشک خام بود تو بیس چهار ساعت یه قاشق پلو خوری اگر آلو بخارا بود هفت عدد کافیه حالا فرض کن هم قرزت خون کسی داره هم روماتیسم مفصلی داره هم یوبوسط مزمن ناشی از تنبلی روده بزرگ داره حالا این هفت عدد آلو میرسه به چارده عدد هفت عدد رو در بین روز میخوره دونه دونه تو دهن نگه میداره آب بشه حسنی میذاره کنار اون هفت عدد دیگه رو میذاره تو تایی لیوان روش آب میریزه میذاره تخشیه پایین یخچال. صبح که پشاد او نماز صبح که فریزه صلاة صبح کنه حالا اول یه لیوان آب آلوره میخوره اون لپاش هم میخوره حساشی میذاره کنار اینجا هر سه تا بیماریش همزمان خوب میشه تو بحث مال عناب عن و ریواز اگر کسی هم قلزت خون داره هم فشار خون اینجا ریواس و اناب درست خون را رقیق میکنه، اما زیاد نباید بخوره که فشار خونش بالاتر نره. یک ساقه ریواس که خورد کافیه تو بیشتره. یا اناب یک ماشت سرخالی یعنی چارده عدد خورد کافیه. اینایی که شمردم، اون چارلیوان آب چارلیوان آبجو بدن و این پنج تایی که شمردم هم حاجبا. بخشی از اینا را انجام بده از آسپرین قوی تره. چون قرصهای شیمیایی آسپرین هفت بیماری میاره یکیش گلوکوم و آبسی چشم، چشمه یکیش آسم و تنگی نفسه یکیش خونریزی مهده است. وقتی همیشه هر شب بخوره یا با دوز زیاد بخوره تو بحث وارفارین که رقیق کننده قوی خونه و شیمیایی و در اروپای غربی داروی مشکشه و پروفوسور پیتر کوپر در کتاب مسمومیت از داروهای شیمیایی ترجمه دکتر محمد خوری دکتر فررخ سیر سال انتشار 1361 اجری شمسی ترجمه من دارم اونجا هجوان این پروفوسور پیتر کوپر میفرماید که این داروی مشکش در اروپای غربیه. متاسفانه در بلاد اسلامی عنوان رقیق کنندی خون قرص و اینا چه مردم میدن میخورن بله یه بار بحث اورژانسیه لختی خون شده سکته مغزی شده حالا یکی دو واحد تو کلینیک بیمارستان بحث فوریت های پزشکی یکی دو بار حالا آمپول وارفار میزنه اب نداره اما همیشه که ضرورت نداره مسترکه نیستی شما همین چهار تا لیمان آبی که گفتم و آب جوش. این پنج هم هر کدوم تو منزلشون بود با همین توضیح که دادم اگر رعایت کنن نه دوچار غرزت خون میشین اگر هم غرزت خون داشته باشی خوب میشین بدون مصاف داروهای شیمیایی اجازه کمپر از یک دقیقه بین برنامه وقت داریم میخوام یه دعای برنامه بکنیم خدا بهضی کنه اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بله ها و بنی ها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک اللهم عجل لوليك الفرج والنصر النصر اجعلنا مجعلنا من اعوانه و انصاره و اشیاعه. مجعلنا من المستشهدين بین یده اللهم اشفه امراظنا ومرضانا بحق و حق محمد و محمد ایشالله امی بینندگان إن شاء الله. و عشق مندگان عزیز با توکل بر خداوند و توسل به چهارده معصومین در پناه حق باشان همیشه سالم با عافیت و شاداب و سلامت باشید خیلی ممنون متشکرم من وقت خیلی کمی داریم برنامه‌کارتونو بفرستید ممنون. از الان سوالاتونو حاضر کنین برای هفته بعد چهارشنبه ساعت 19 و 30 دقیقه و یا ساعت 19 و مدت 90 دقیقه در خدمت شما بزرگواران هستیم خدایا رو